ریه ممتعنه. من اتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن خرجتون جهادا فی سبیلی و امتغاء به نام الله که بخشا گنده و با رحمت است اهل ای اهل ایمان دشمنان من و دشمنان خودتان را به عنوان دوست اختیار مکنی شما با آنها اظهار دوستی می کنید در حالی که آنها نسبت به آنچه به حق برایتان آمده کافرند آنها پیامبر و شما را به خاطر ایمانتان به الله که پروردگارتان است از دیارتان اخراج کردند اکنون اگر برای جهاد در راه من و رضایت من بیرون آمده اید در نهان با آنها اظهار مودت نکنید زیرا من باعند که در نهان میکنید یا آشکارش میسازید آگاهترند چنانچه کسی از شما مرتکب چنین کاری شود بیشک راه درست و رستگاری را گم کرده است چنانچه بر شما مسلط شوند با شما چون دشمنان رفتار میکنند و دست و زبانشان را برای آزار شما میگشایند زیرا دوست دارند که شما نیز کافر شوید نسبت های و فرزندانتان در روز قیامت هیچ نفعی برای شما نخواهند داشت زیرا خدا میانتان جدایی می‌افکند و خداوند نسبت به عمل کردتان بیناست برای شما الگوی خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود دارد آن هنگام که به قومشان گفتند ما از شما و از آن که به جای خدا میپرستید پرستید به اعتقادات باطل شما کافرید اکنون تا ابد بین ما و شما چینه و دشمنی افتاده مگر آن که به خداوند یکتا ایمان بیاورید به جز آن سخن ابراهیم که به پدرش گفت من برای تو طلب مغفرت می کنم با آن که در برابر خدا اختیار چیزی را برای تو ندارم پروردگار بر تو توکل می کنی؟ و سوی تو میآوریم زیرا سرانجام ها به تو خط می گردد پروردگارا ما را مایه امتحان کافران قرار مده و ما را بیامرز ای پروردگار ما که تو قدرتمند و حکیمی لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد براستی آنها الگوی خوبی برای شما هستند برای هر آن کسی که به خدا و روز قیامت امید وارانه می نگرد. بدانید هر کس از حقایق روی بگرداند به خود زرر زده است زیرا خداوند بی و در خور ستایش است امید آنکه خداوند میان شما و دشمنانتان مودت و دوستی برقرار کند زیرا خداوند تواناست و خدا آمور زنده و رحمت است خداوند شما را از نیکی کردن و عادلانه رفتار کردن نسبت به کسانی که با شما در دین نجنگیدند و از دیارتان بیرون ننمودند ننگ کند زیرا خداوند عادلان را دوست دارد بلکه خداوند شما را از دوستی کردن با کسانی که با شما در دین جنگیدند و از دیارتان بیرون کردند و نیز کسانی که در بیرون راندنتان تان هم دستی کردند نهی می کند. هر کس با آنها دوستی کند بیشک از ستمکاران است ای اهل ایمان اگر زمان مؤمنی که مهاجرت کردند به سویتان آمدند آنها را امتحان کنید هرچند که خداوند نسبت به ایمان آن زنان آگاهتر است پس چنان که براستی فهمیدید. زنانی با ایمانند آنها را به سوی اهل کفر باز نگردانید زیرا آنها بر کافران حلال نیستند و کافران نیز بر آنها حلال نمی باکشند هرچرا همسران کافرشان برای این زنان هزینه کردند پرداخ نمایید و گناهی نیست اگر با آنها ازدواج کنید در صورتی که مهرشان را پرداخ نمایید و زنان کافره خود را نگه ندارید و مهری را که پرداخت کرده اید از آنها مطالبه کنید گونه که کافران مهر زنانی را که از آنها جدا شدند، از شما مطالبه می کنند این حکم الله هست که میان شما حکم می کنند بدانید که خداوند آگاه و حکیم است. و اگر بعضی از زنان شما به سوی کفار رفتند و شما در پیکار پیروز شدید از غنایمی که به دست آورده اید به مردانی که زنانشان رفته‌اند به میزان مهری که پرداختند بدهید و حرمت خدای را که به او ایمان داری نگاه دارید ای پیامبر اگر زنان و اهل ایمان به سوی تو آمدند تا بیعت نماگند به شرط آنکه هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهند از انبال شوهرشان دزدی نکنند زنا مرتکب نشوند و فرزندانشان را نکشند توهمت و افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و نافرمانی تو را نکنند با آنها بیعت کن و برای آنها از خداوند طلب آمرزش کن زیرا خداوند آمرزنده و باگذشت است ای اهل ایمان با مردمی که خدا بر آنها غضب کرده دوستی نکنید زیرا آنها از آخرت معیوسند همان گونه که کافرانی که اهل گورند معیوسند يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم قد يهشمون من الاخرة كما ياسى الكفار من اصحاب القبور صدق الله العلي العظيم راب سکرد خداوند بلند مرتبه بود از این کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.